بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسلين وآلئي وصحبي أجمعين أما بعد فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السمى النقيع زلالها ليلهو ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تسرم حبالها فقل للذين استعذبوها بگو بونهایی که این دنیا را گوارا و پاک و زلال میبینه رویدا کم میکنم سعی بکنید. اندک زمانی بگذارید تا بگذرد. روزی خواهد اومد که پیش ایمان خواهی شد. سین قلب و صم و ناقیع زلالها. جایگزین اون آب گوارا سم خواهد بود. اون سم تلف، اون سم هلک کننده که شما را نابود خواهد کرد. یعنی این دنیا وبالی خواهد شد بر جدایی شما. این دنیا حسرت و ندامات و پیش خواهد بود برای شما. ولو ترا اذ المجرمون ناکس رؤوسیم عند ربیم ربنا بصرنا سمعنا فرجعنا نعمن صالحه. اینا موقنون اون روز روز حسرت و ندامتی که انسان وقتی که خداش اعمال خودش را سزا سزای اعمال خودش را فربنده یا اعمال خودش را میبینه، اونجا میکنه که بر لاها مرا بر بگردون بی این دنیا تا دوباره عمل نیکی انجام بدن. فرجعنا نعمن صالحه. مرا بر بگردون تا عمل خوبی انجام بدهی. ولی کن دیار راهی برای برگش نیست هو و یغتر رو بی ما بدالا بزار بازی بکنن بزار گذرانی بکنن هر خطر میتونن بالاخره روح به حلقوم خواهد رسید و اون لحظه مرگ و فراق دنیا برای همه میتون و اینهم میتون حتی برای تو رسول الله مرگ خواهد رسید مرگ برای همه هست كل نفس دائقت الموت هر نفسی باید بمیند متا تبلغ الحلقوم تسرم حبالها. اون موقعی که روح به حلق و اون ریسمانی که بین تو و دنیا وصله قط میشه یعنی رابطه تو و دنیا قط خواهد شد تو سرم بالا قط میشه اون ریسمانی که بین تو و دنیا هست تو رو به دنیا وصل کرده هر ارتباطی با این دنیا قط میشه هر ارتباطی وقتی که تو را در قبرت خوابوندن حتی صدای اون اشخاصی که روی زمینم نمیشنوی الا صدای پا اون در لهجه ای که روح دوباره به قبرت برفاحد گشت و ما انت بمسمع من فی ای محمد تو نمیتونی صدااتو به اون مرده بشنوی حق مرده در اون زیر خاکه حتی از شنیدن اون صدا و دیدن محرومه از هر ارتباطی با این دنیا قطع مگر میتونه ببینه در این دنیا چی میگذره بله دروغ زیاده که رسول الله میبینه و در جلسات حاضر میشه و روحش جاودانه نا والله اینجوری نیست نا والله اینجوری نیست اگر نار معنیی داشت چه معنیی داشت که الله میگه انکم میت و انهم میتون پس مر چه معنا داشت پس این ده اساسا نمرده این نخز قرانه کدام یکی از صحابه چنین اعتقادی داشتن اگر قرار باشه که جاودانه باشیم پس چرا الله درباره شهدا خودش میگه لتاقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم چرا گفت عند ربهم چرا گفت نزد ما یعنی اینجا یعنی اینجا میبینن یعنی اینجا حاضرن الله یعجيبه مقریزی شافعی از علمای مصر چیزی جالبی میگه میگه والله از هر دری نگاه میکنه به اون کسی که مرده را صدا میزنه والله چیزی جز بدبینی به الله چیز دیگر نمیبینم بدبینی به شنیدن الله یعنی الله صداتو نمیشنوه بدبینی به دیدن الله یعنی الله تورا نگاه نمیکنه بدبینی به قدرت الهی یعنی الله قادر نیست الله رحمتو ندارد بدبینی به رحم الهی به مهر الهی میگه از هر دری نگاه میکنی صدا زدن غیر الله درش بدبینی هست. بدبینی و و سوء زن به الله، حسن زن درش نیست. حسن زن اینی که من بنده الله هم بین من و الله حجابی نیست. الله دعایم به سجابت میکنه، الله مرا بینه الله از حال من با خبره. الله مهربان رحمان و رحیم در هر نمازی دارم میگم. اما وقتی غایبی را صدا میزنم، دلالت در چی میده؟ سوء زنم به الله متعال، بدبینی و بدگمانی من به الله متعال. ای بنده بدان که مرگ حقه بدان که مرگ رابطه تو را با این دنیا قط می کند بدان ای بنده اون وقتی که روح به حلقومت رسید دیگر توبه سودی ندارد ان الله حیق و توبه اط بددی مععلم یاو تا وقتی که روح به قراره نرسید نرسیده به حلقومت نرسیده تا قبل از اون برات سودی داره اون توبه ولی اگر رسید اونجایی که فرشتگان الهی را به چشم خودت می ملک الموت را دیدی دیگر سودی برات نداره که توبه بکنی این ابیات را از باب تذکر به توبه داره اینجا برای ما یاد میکنه ای طالب علم اهل توبه باش. همیشه خودت رو مقصر بدون رسول الله صلی الله علیه و از از کاری که برامون توصیه کردن برای اینکه غم و اندوه مون برطرف بشه این بوده که توصیه رسول الله دعای زنون را تکرار بکنیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دعای یونس علیه السلام موقعی که اسیر میشه در شکم نهنگ الله رأياد ميكني بأ اقرار ميكني بعبودية وبندگيش وينك مقصر بدي لا إله إلا سبحانك إني كنت من غطو الله بكمنا زي مقصر منا إن حسن ذنب الله خطر مقصر ببيني قال رحمه الله ويوم توفى كل نفس بكسبها تود في داء لو بنيها ومالها و اما باليمين کتابها اذا احسنت او ضد دذب و یبدو لدیها ما اسرت واعلنت اعلنت و ما قدمت من قولها و الله اکبر یوم توفه كل نفس بکسبها انروزی که آدم خوب جزا و پاداش اعمال نیکش را خواهد دید و انروزی که آدم بد سزای کردار و بدناشایستش را خواهد دید یا توفى كل کل بكسبها هر کسی بر اساس اعمالش تبد و فده ان و ماله اون روزی که اون مجرم آرزو دارد و میخواهد که فرزندش مالش را فدا بکنه به خاطر اینکه عذابی از عذابهای الهی برش کاسته بشه کم بشه یابد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ و وصاحبته و وفصيلته التي و من في الارض جميعا ثم ينجي يخاط تمام اهل دنیا را فدا بکنه برای اینکه نجات بیا به ولی راه نجاتی نیست لو جوی دیگر الله در قرآن می بیاد للذین استجابوا لربهم والحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا لو ان لهم ما في الارض هر چیه در این دنیا هست میخوان فدا بکنن برای نجات لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اندوزه آرزو دارن که داشته باشن فدا بکنن و بیشتر از این دنیا برای نجات يوم توفق كل نفس بكسبها فكيف إذا جمعناهم الله مليت فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هكذا شخص زل نميشه هكذا شخص زل نميشه هكذا سزايا بدش رومي والله مغرور بعمل خوبة النشي فريبتون ندعون عبادة طاعت یا ان ريشت یا ان پيرانك وتاهت ان اهل بودنات پایبند بودنت به سنت گودتو نده فریبتو نده تهجدت سنتت قرآنت فریبت نده میدونیم قصه اون زن فاحشهی با یک عمل نیکی سگی را نجات داد سگی که نجست بهشتی شد ظلم نگاه بکنید قیاس بگیرید با عمل خوب چیزی که آزار عذیت ظلم اون چیزی که قیاس بگیریم با هم دیگه اون زنی که اهل عبادت و طاعت بود گربه ای را حبس میکنه میمیره جهنمی میشه با یک ظلم و آزار به یک حیوانی این ظلم و ظلمات يوم القیامه هر چی ظلم باشه بدگویی باشه بددهنی باشه غیبت باشه تهمت باشه آزار و اذیت ظلم و ظلمات و در مقابلش خسن در حق دیگران حق و ناس بخشیده نمیشه این زن اگر بد بود در حق خودش بود یک عمل و طاعت اون زن را نجات داد حیوانی ایران نجات خوبی قابل قیاس با هم دیگر نیست یک خوبی تو را نجات میده و یک بدی شاید تو را جهنمی بکنه پس بر حذر باش بر حذر باش ای مؤمن از اینکه اون جایی که فکر نمی کنی پات بلغزه و لغزشه سبب بشه جهنمی بشی سبب نشی که به خودت فخ فروشی بکنی چون خودت رو بهتر می‌بینی پای بنده به سنت میبینی دیگران را تحقیر بکنی حق نداری لا یسخر قوم من قوم هر قومی حتی اون یهودش حتی حق تحقیر نداری حق تحقیر را نداری تحقیر کردن به جنسش چون اعتراض بر الله حالا چون یهودی زاده است یا چون نمیدونه مثل اون چیزی که برای رسول الله همسرانش پیش اومد دیگه از حجۃ الوداع برمیگشتن بعد در وسط راه صفیه شوترش با شکسته میشه بیک هممسرانش میگه که شوترتو قرض بده به صفیه بعد زینب همسر الله میگه افقر و یهودی یهک به اون یهودی زاد زن یهودی زادت قرض بدم حجرش میکنه فکر میکنه دیگه تلاقش افتاده بر میگرده فل باش حرف نمیزنه محرم باش حرف نمیزنه سفرم باش حرف نمیزنه سه باش حرف نمیزنه زنه تا ربیول اول خاطر چی اینکه تعزت بین اینکه پدرش یهودی بوده و افقر و یهودی یه منزن یهودی زادت قرص بدن در حدیث امون نعایشه داریم که بهش میگه کلمه ای گفتی که اگر با آم دریا میخته بشه آب دریا گندیده میشه کلمه یک کلمه هست شاید ترا به حلاکت بندازه ترا نابود بکنه ترا در جهنم بیاندازه مغرور به اون اعمال نیکت نشو ای مؤمن برحذر باش خاتمات باهم كلمية زشتوا بد باشه. تودوا فداعا لوبنيا وماليها وتأخذوا إما باليمين كتابها إذا أحسنت. يا أصحاب يمين يا أصحاب شمال. الله أكبر. روز حقی از زلزله آردو زلزله روز حق والله الله ان وقتی کشور می دک اسرافیل در سور بدامه از زلزله آردو زلزله ها موقع موقعی ک زمین به لرزمی وفته ان لحظهایی که کشن در هم کوبد می شه ستارگان در هم کوبد می شن ان لحظهایی که این زمین غیر از این زمین می شه یوم غير بدال آردو غیر ال آردو القارعه مال قارعه ما دراکم والله سخته الحاقه مال حاقه واللهی اسماش تکندهنده است. واللهی اسماش قبه ها را به در میاره چه برسه از اون لحظه که انسان قبرش گشوده بشه باز بشه الله بهش بگه بیا کتابت را بخون ها اون مقررا و کتابیه بیاد بیار اون لحظه الله داره جلو چشاد داره به نشون میده میگه این چنین صحنه ای خواهد بود اون لحظه که قبرت شفته میشه بیرون خواهی اومد لخت و اوریان جلو باری عالمی استی و پروندهت را به دستخواهی گرفت. ان لحظي كي فما يعمل مثل ذره خيرا يراه ذره ذره حساب خي ومن يعمل مثل ذره شرا يراه هر ذره خير اش حسابش فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرة وكتابية إني ظننت أني ملاك حسابية يخندق داش كحساب كتاب شد فهو في عيشة راضية يخندق حساب كتاب حس عمل كرداري نيكان جمدت فهو في عيشة راضية أنجازندي خشى خاد داش في جنة عالية لا أم بهشت ولا خطوفها دانية أم بهشت لك برصميهها ودرختانه كلوا وشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُتي كتابه بشماله ف قول و یاله تنیلم اوتا كتابيا. اما ان کسی که پرونده اعمال شما دست چپش میگیره میگه ای کااش پرونده را بهم نمیدادنفی قول و یا ایطنی ای کااش لم اوتا کتابیه ولم ادر ما حسابیه ای کااش نمیدونستم این حساب کتاب چیه؟ حساب کتابی نبود ولم ادر ما حسابیه یا ای تکانت قاضیه ای کاش که ما می شددم معغن ان اون مالی که در دنیا به دست ورددم به دردم نخور حالا که نی سلطانیه اون سلطان اون ملک اون جاه اون اون مال به دردش نمیخوره اونجا هست که حسرت میخوره خذوه فقلوه اونجا هست که الله دستور میده او را به زنجیر بکشید ذم الجحیم فصلوه او را به جهنم بیاندازید والله صحنه هایی که الله یاد میکنه از جهنم صحنه های هولناکیه اون لحظه ای که اون زنجیر به گردن اون مجرم اون فاجر اون گناهکار انداخته شده و الاغلال و فی اعناقهم و السلاسل و یسحبون والله دردناکه والله هولناکه فرشتگان الله زنجیر را به گردن اون مجرم و گناهکار و توحکار مندازن او را کشان کشان در صحنه محشر میگیرن و میکشن و به جهنم میاندازن والله هولناکه ثم في سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکو در اون زنجیرهای که هفتت افتاد گزن او را بکشید کشن کشن به طرف جهنم این فقط صحنه محشره چه برسه به عذاب الهی اون عذاب دردناک و وخیم جهنم و یبدو لدیها ما اسرت و اعلنت اون روزی کس اون پنهانها آشکار خواهد شد و اون اعمالی که اون فرد انجام داده اون هست که آشکار میشبت و ما قدمت من قولها و فعالها هر قول و هر عملی انجام داده چه خوبش چه بدش آشکار میشه علمت نفس ما قدمت و اخرت اون لحظهی هاش که انسان در مقابل اون اعمالی که انجام داده اندوختهاش حساب میشه لا يغادر صغیرت ولا کبیره لا يغادر صغیرت ولا کبیره إلا احصاها حساب میشه تک تک اعمال انسان حساب میشه چه کوچیک چه بزرگش لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنه اونایی که کار نیکی انجام دادن پاداش نیکی ببینن و اونایی که کار بودن سزای اعمال بدشون رو ببینن به اید الکرام الکاتبین مسطر فلم يغن عنها عذرها وجدالها منالکه تدری ربحها وخسارها ذاك تلقى ما إليه مآلها الها من اهل السعادة فإن لها الحسن بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها ودلالها بأيد الكرام الكاتبين مسطر بدون فاربان ذهي أعمال فرشتقان مقرب الهی می‌نویسند ما یلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب عتیدی الله گذاشته که تک تک اعمال تو را فلم يغن عنها عذرها وجدالها اونجا هست که بدون اسخاهید بحانت به نخواهد خورد در روز قیامت روز محشر كل امه تدعى الى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فرشتگان همه اعمال انسان ها را نوشتند دیگه نمیتونه انسان اونجا اسقاهی بکنه اونجا تراشی بکنه نه واللهی تک تک اعمال انسان نوشته شده هنالیک تدري تدری ربحها و خصها اونجا هست که انسان وقتی که پرونده را می بینه میدونه که در مقابل اون اعمال نیکش باید پاداش ببینه و اون اعمال بدش باید سزاشو رو پس بده. اونجا هست که چهره ها مشخصه یوم تبيض وجوه و تسود و وجوه وقتی که پرونده را دیدی میفهمی رو سفیدی یا رو سیاهی و ک تلقامه ایلهیه معلوها اون روز هست که عاقبت امر خودش را میدونه. بهشت یا جهنمه وقتی که پرونده را انسان گرفت، جزای احسان نیکی نیکیست هل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی نیکیست و یجزی الَّذین احسن و بالحسن اما اونهایی که تبهکار و بدکار بودن و تو مکان عاقبت الَّذین اساءوا السوء، اونایی که تبهکار بودن بدکار بودن اونها سزای سختی در پی خواهن داشت فانتكم من اهل و والتقى اگر بنده خوب الله بودی اهل عبادت و طاعت بودی فان لها الحسنه بحسن فيالات بدون نشا بهشت الهی را خواهی داشت الله ترا وارد بهشتش میکنه و اون نعیم جاودانه تفوز به النعیم اون بهشتی که درش اون رودها هست اون درختها هست اون ها هست اون حور هست و تحبرو ای تو نعمو فی روضاتها و ها، اونجا هست که خوشکام خواهی بود با اون میبه های بهشتی با اون سایه های درختان بهشتی با اون رودهای عسل رودهای خمر فهم فی روضتن يحبرون یتلذذون یعنی لذت می‌برند. در اون بهشت الهی با اون نعمت های الهی و ترزقو یعنی روزیشون الله میده با اون چیزی که دلشون میخواد مما تشتهی من ها. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين نمیدون الله چی براشون گذاشته از اون پاداشای نیک جزاءا بما كانوا یعملون در مقابل اعمال نیکشون و تشربوا من ها و زلالها و مزاجهم من تسنين ان که الله انواع نوشیدنیها بهشون میده الله به اون مقربینش به اون بندگان نزیکش عطا میکنه اون انواع نوشیدنیهای گوارا و لذیذ و خوشمزه و که اون مؤمن در اونجا خوشقام بشه وَإِنَّ لَهُمْ يَوْمَ المزيد لَمَوْعِدًا زِيَادَةً ظُلْفًا غَيْرُهُمْ لَا يَنَالُهَا الله أكبر بلاتر النعمة كبهشتين خواهنداش در اون روز نگاه به الله متعاله در اون روز که نعمتی دیگر بالاتر از آن نیست و این لهم یوم المزید اون روز مزیده للذین احسن الحسن و زیاده این زیادت این مزیده چیه؟ حسنه که مشخصه بهشته زیادی بر اون حسنه و بهشتیه دیدن الله که نعمتی دیگر بالاتر از اون نعمتی نیست همون تو که در حدیث است حدیث جبرئیل که که الله شرف میده به بهشتیان شو انت هذا الحديث الصحيحه تبع راني ونحن ندعوه في الاخره يوم المزيد ان رزقك الله را خايم فرشتگان از اون روز بعنوان روز مزيد یاد میکنن وان لهم يوم المزيد للذين احسنوا الحسن وزياده ان زياده مزيد ودر حديث ديگر دارين رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسهم في الجنه باشوق الى شيء منهم الى يوم الجمعة مو من النبي الشوقش اشتياقش بچیزی باشه بیشتر از روز جمعه چرا روز جمعه شوق اشتیاق مؤمن در بهش روزتون است چرا الله اکبر ليا منه کرامه وليزداد نظرا الى وجهه عز وجل الله اکبر اون روز گذاشته برای بهشتیان که مؤمنین الله باری تعالی را رو در روز جمعه ببینند مؤمنین شوق روز جمعه را رو دارن در اون روز کتر روز جمعه رو بدونید با اون صلوات با اون سوره که کوتاهی نکنید در صلوات فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون توصیه های فراوانی که داشتن والله روز بزرگی هستن در آخرین ساعت روز جمعه که وقت اجابت دعا از الله بخواهید که الله محرومم نکنه از دیدارش از رؤیتش وإ لهم يوم المزدي لا موعدة زیادة تزولفه زیادتی منزلت شفی بالاتر از تمام شرف تمامی کرامت ها و نعیم ها و خوشیها شرافت و و مکانی و جایگاهی که دیگه بالاتر از اون جایگاه نیست زلفاص دیدن الله متعال وإ لهم يوم المزدي لا مووعدة زیادة تزولفه غيرهم لا ينالها که غير از بهش نمی رسن طالب تو میتونی با ان علم که ترا باز بداره از گناهان و ترا تشویق بکنه به سوی طاعت و عبادت تو میتونی به این جایگاه برسی ولی دیگران که دنبالش نیستن از اون محروم خواهند گشت ای طالب علم این شرفی که الله به تو داده وجوهن الى وجه الاله نواضر الله اکبر وجوهن الى وجه الاله کسانی هستن که الله این شرف را بهشون داده این جایگاه را بهشون داده که نگاه الله باری تعالی بکنن لقد قال ما بالدمع کان ابت الله این کرامت و این جایگاه بهشون میده هر کسی این شرف را نخواهد داشت اون کسی که گریه ای عشقی ریخته اشک شوق دیدار الهی اون شخص هست که لیاقت و شرف دیدن الله را خواهد داشت هر عشقی اشک شوق عشق ترس از عذابش اون چشمی که گریان شده از محبت و ترس الهی اون چهره است که حرام میشه بر جهنم هر چهره ای وجوه إلى وجه الإله نواضر لقد طالما بالدمع كان ابتلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلم فيزداد من ذاك التجلي جمالها الله أكبر وغنددني الله جل شأنه مؤمن خوشرو میشه زیبا میشه شکی در دیدن الله نداریم چنانچه در صحیحین در احادیث زیاد داریم انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر رسول اشاره میکنه به ماه هم میگه همون که این ماه رو میبینید روز قیامتم الله رو میبینید لا تظامون في رؤیته زحمتی برای دیدن الله براتون نیست سر اون روز فاين استطعتم أَلَّا تغلبوا على صلاه قبل طُلُوعِ الشمس وصلاه قبل غروب الشمس فَفَعَلُوا بَرَيَّ انك اذا إن نعمت محروم نشي الرسول توصيني يقول لك نماز قبل از طلوع وَقَبْلَ و قبل از غروب خورشيد نماز, نماز بدون روز ربها نگاه الله چرا نگا الله نکنه كنند چرا حسن بصري و حق لها ان تنظرا وهي تنظر الى الخال حق لها چي گويشه کرامتشه كينچنين مكرم بشه با این زيباي وقتي كه الله متعال ميبينه لقد طالما بالدمع كان تلالها این اش عشق ناو ان اشكي كه انسان در پس مصيبت اشك میریزه فتنه های دنيا براش سرازير ميشه خدا من بمیرم قتل و کشتار فقر و توهيداستي مردم به خاطر فقر تمنای مرگ می کنن ای کاش می ای کاش نبودیم این عشق این گریه و زاری این گریه این عشقان سبب نمیشه که چهرهت بر جهنم حرام بشه و تو این شرف را جای داشته باشی که نگاه به الله بکنی نه این عشق با اون عشق فرق میکنه. این عشق اشکی و شوق دیدار الهی در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله از دعاهایش چنین بود واسالک لذته النظر الى وجهك لذته نگاه به چهره را الله می خواهم واسالک النظر الى وجهك والشوق الى لقائك شوقی می خوام به ملاقاتت شوق این غریه اشک این اشک شوق و شوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضله في غير ضراء مضره نه در اون مصیبت اون ذره فتنه فی غیر ذره یعنی اون شوق و اون اش که نه در مصیبت نه در ایزای بدبختی و خاریه نه در فتنه است ولا فتنه مضره انسان از دل از خاطرش از قلبش شوق به دیدار الله داشته باشه و عملی انجام نده که الله را برنجونه با اون که با اون عملش الله او را محروم بکنه از این نعمت خصن اسبال از نکوهشی که اومده اصلا در بحث پیراهن، بحث نگاه کردن ما به الله نیست بالاتر از این الله هم نگاه اون بنده نمی کنه لا من جره و خیا یکی میگه من که از روی کبر نمی کن. از کجا میدونه کب تو دلت نمیاد مگر وزنه با و ترازو و سنجش سنجی چیزی هست که بسنجی که کب داری نداری بر باشیم از اون گناهانی که عقوبت های سختی قاحت داشت نه اینکه تو نمیتونی اگه الله بونی الله هم نگاهت نمی کنه بالاتر از اونها سختتر و سنگینتر و حلناتر از اونه توبیخی سخت اونجا نعمتیه تو نعمتی از دستادی اینجا نه که نعمت از دستادی بلکه موجب توبیخ شدی چه توبیخی الله نگاهتم نکنی با یک گناه یک گناهی که انسان اندک به شماره اونم اصفال لها رب الرحيم مسلمه از رحمتي الوهيه در حق مؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما الله به مؤمنين رحيما فيزاد من ذاك التجلي سلام قولا من رب الرحيم الله میاد چنانچه اینجا میگه سلامی بربندگانش میکنه و مؤمن فیزداد و ذک تجلی جمالها جمالش زیباییش با اون دیدن الله بیشتر میشه در حدیث داریم رسول صادصم می‌فرمایند این نفل جنتی لسوقه الله بعض از نسبت دادن این حدیث در روز جمعه با دیدن الله جل شانو که انسان زیباتر میشه بازاری هست در بهشت یتون کل جمعه جمعه بازاری هر جمعه بهشتیا میرن اون بازار فتحب ریح الشمال فتحت في وجوه باد میاد حالا گفته شده این باد با دیدن رؤیت الهی فیزدادون حسنا و جمالا با بان باد زیباتر میشن فیرجعون ال اليهم وقد ازدادوا حسنا و جمالا بار میگادند در ساعتی خیلی زیباتر شدن فیقولو لهم اهلوهم خانوادشون بیشون میگن و اللهی لقد ازددتم بعدنا حسن وجه بعد از اینکه رفتید و الان با اگرش خیلی زیباتر شدید فیقولون و انتم واللهی لقد ازددتم بعدنا حسن وجه شما هم همینطور زیباتر شدی نعمتو ای الهیه در صحیح مسلم داریم رسول الله صلى الله عليه داخل فرميان اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم بايشي امورده بهش مش الله بهشون ميجي ميخايه شيء بهتم بدم بالاتر از اين نعمتا فيقولون الم تبيض وجوهنا ما قلت شهرامو سفيد نكادي الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار مره ناز جهنم نجات نددي بهش بهم ننجات قال فيكشف الحجاب الله حجاب رب بين فضله شو بندقانش فما اعطوا شيئا احب إليهم من النظر الى ربهم شيء ديگه عمتي بولاتر از اون داده نشودن اون بهشتیان ثم تلا هذه الايه رص اين ايرات تلاوات ميكنه للذين احسنوا الحسن وزيادة ان زيادي مزيدي هست الله بمؤمنين مؤمنين داده چهره هاشون اينچنين زيبا و خوشرو الله جل شانه بمقعد الصدق حبذا الجار ربهم ودار دار خلود لم يخافوا زوالها فواكיהا مما تلذ عيونهم وتتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة ثم فروشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها بطائنها السبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها بحث بهشرا مكنه بمقعد الصدق حبذ الجارو مقعد الصدق أنجاي أن قاه الصادقين أنجاي قاهي منزل قاهي ككناره الله بارى تعالى سدر فردوس أعلاه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عندما ليكن مقتدر عندما ليكن مقتدر جايش النز الله جایگاه و شرف هر کسی نداره اگر میخواهید بدونید اهل این جایگاه هستید یا نیستید خودتون را مقایسه بکنید با کعب ابن مالک و حلال ابن امیه و مرار ابن ربیع سه صحابی رسول الله صلی الله علیه و وسلم توبیخ شدن تنبیه شدن از صرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر یک عصیان یک سرپیچی یک جهادی با رسول در تبوک نرفتن گفتن این همه لشکر هستند چه نیازی به ماست یک گناه، یک معصیت سبب شد که رسول الله سه حجرشون بکنه، باهاشون حرف نزنه. کبن مالک میاد کنار رسول الله میسه، میگه آرزو داشتم سلامی که بکنم ببینم رسول جواب سلامم میده یا نه. خیلی برام شکنجه بود میگوید خیلی برام سخت بود. صادقانه ولی اومدم گفتم یا رسول الله، عذری ندارم، ای ندارم. این صدقشونه. گفت که یا رسول الله، من میتونم از حق خودم دفاع کنم. من میتونم شاعرم زبان دارم، ولی اینکه رسول صادقانه بدم عذری نداشتم. این صدق با الله صدق داشته باشین در مقابل کردار بدمون گناهی داریم، گناهی کردیم، مرتکب شدیم لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالم بار الها من گناهکار خودت به من رحم صدقت را اگر میخوای بسنجی اینجا بسنج چقدر گناه تو انجام دادی اینجا یک گناه بود این چنین توبیخی شده آیا تو چنینی با خدایت با خالق انت که هوش می‌کنی یا نه سخت برات اون لحظه‌ای که گناه مرتکب میشی یا نه برات خیلی آسونه برای مؤمن گناه سخته چون صادقه به الله چون میدونه بعد الهی صدق و حقه به مقعد صدقه اسمش جایگاه صدق گذاشت جایگاه رسولانه نه اونهایی که دروغگو هستن در ادعاش در ادعا دروغگو نباش صادق باش اهل سنتی در تمام اعمالت سنی باش نه در ادعا نه در فقط گفتارو ادعا کردن حبذا الجار ربهم و دار و لم يخاف دیگه اونجا دیگه ترسی بر اونها نیست چه ترسی بر اونها از وقتی که جو منزل منزلگاهشون نزد الله متعال خالق آفریدگار جهان است آسیه همسر فرعون از الله چی خاص اذ قالت ربي ابن لي عندك نكن خواستان اینکه نزد الله باشه قبل از اون بهش قبل از اون جایگاه چه بالاتر از این که الله شرف بده به اون مؤمن به اون متقی که کنار پروردگار همسایه الله باشه به مقعد صِدق حبذ الجار ربهم ده. چه بالاتر از اینکه همسایه الله بشن در اون جنت فردوس اعلی و دار و خلود لم زوالها اون جایی که دیگه جاودانه هست دیگه نابودم نمیشه لم يخافوا زوالها فواکیها مما تلذ عيونهم الله في القرآن عندما يقول فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ تلذّ الأعين هر چيزي كي إنسان بره إنسان لذت بخشة ميبها الله بيش ميده هر چيزي كي دلت باش خوش مشه با ديدانش وتلذ الأعين با ديدانش خوشحال مشه وانتم فيها خالدون و تضطردوا الأنهار بين خلالها شقد دار القرآن شما داري تجري من تحتها الأنهار شقد إنسان دوست داره رودخانه و نهر و بين باغارات مشه صدايش آب مثلا. الله با خاطر همین از نعممت هایی که زیاد تکرار میکنه بحث رودخانه هایی هست که در بهشت بشه. بین اون باغ و بستان های بهشت هایی هست که الله گذاشته که صدلت منت ها گرفته قلاب اون حوز می یه طرف به اون بهششه هم که سرازگیر میشن یک طرف على سرور موضونه میدونید الله جل او ثال هایی که داره به همون میزنه اون چیزهای ناچیز و گران به رودخانه همه جا نیست. انسان حسرتش میخوره که مثلا یه چند لحظهی کنار رودخانه بشینه چیزای گرانبها دیگه عسل رودخونه از عسل سرور موضوع نه چیه فرش های ابریشم ابریشم هر کسی میتونه داشته باشه فرش هایی که الله گذاشته فرش نه اون فرشی که مثلا بخیلی در بیارن الان مثلا فرد پشم اون ابریشم مثلا چند میلیمتر باشه نه اون فرش های ابریشمی پشمی که انسان از نشستن روی اون لذت ببره نرم لطیف علا سرور موضونه متکینه علیه متقابلی اون جایی که مومنین روبروی هم دیگه میشینن بطاینو من السبرق فرشی که میشینن فرشی که روی خودشون میدن از اون فرشهایی که تزئین شدن با زیورالات گرامبه ها از یاقوت از تلا از الماس وصفشه متکینه علی فرشن بطائنها من السبرق و جن الجنتین دن چون وصفه اون که در بهشته اینا اون فرش هایی که این چین و اون از اون لحاف ها گرفته و از اون انواع انعممت هایی که الله داده به مؤمنین اینا میگه فرش دیوار و قبه ها و میوجات و ما که میگید ظاهره اون چیزهایی که برافراشته شده در اون روز در بهشت کیف نکن و وااهر ما مابقی این زیر پتون اینجوری اینقدر زیبا و مزین و تابریشمی و نمیدونم نرم و لطیف و. این فقط زیرپات ای مومن دیگه اون قصرهایی که از طلا هست و از قرش یه طرف از انواع رنگارنگ خونه ها و قصرهایی که مومن داده میشه و از اون بوی خوشش هم یه طرف انواع نعمت ها هست با انواع زیبایی های متفاوت یعنی یک رنگ نیست یک شکل نیست این ها هست که مؤمن سبقت بگیره پیشتاز بشه سابقون سابقون پیشتاز بشه بسویش بشه تابه بسوی این پس نکشه عقب نکشه لمنته لجمالی ها زیبایی بهش قابل وست نیست و تموم نمیشه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعیان هیچ کدوم از ما نمیدونیم که اونجا الله شِجُوز أشتهز نعمات ما قال الله أعدت لعباد الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى بالقلب ما مخطونا قال حافظ الحكم رحيمه الله وإن تكن الأفرافويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها الله إنا أصحاب يمين أما أصحاب الشمال لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحمو من ساء ظلالها طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها فإن تكوا أهل السعادة ونهيك السعادة تمندا ونعمتها وإن تكوا الأخرى أن تنقرواها بعدين أصحاب الشمال والشيء شقافة مندو بذباخ وشي فويل وحسرة ويل هلاك ويل عقوبة السخط عذاب إلهية جهنم إلهية فويل يومئذ للمكذبين ويه جهنم إلهية بريئون أيك تكذيب ميكونن أن أنو روز السد ويل در زياد زيادة کل هم ازتون لومزه اززه ویل و جهنم عقوبته عذاب علهیه بر اون کسانی که این یت را انجام میدن حالا همز لمز تحتره یا بخواد حق مردم خوردن باشه ویلله و حسرت حسرت و انظیر یوم میمل روز پیمانی و حسرت خوردن بیمانی و و ونارو جهیم ما شددنه که حالا غیر از اون پیشمانانی عذابه درناکی که خواهند داشت اونایی که بدبختن ونا رجحي ما أشد نكالها نكال عقوبتها ش عقوبة السختيس ش شدة دارون عقوبة إلهي لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش لهم من جهنم اللهم يقول لهم من جهنم مهاد فارشش ناس جهنم ومن فوقهم غواش لحافش مناس جهنم از زیر جهنم از رو جهنم و کذالک نجز الظالمین این جزای ظالمانه قبط سختیه و من يحمو من ساء اضلالها چه اون سایه سختیه اون جهنم و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال چه میدون کسانی که پرونده اعمالشون به دست چپ گرفتن فی سموم و حمیم اون باد السوزان سموم و حمیم اون آب جوشان چه آب جوشانی؟ اون آب جوشانی که اون جهنمی مینوشد دل و او پاره می شود نابود می شود سایه نه اون سایه که برای جایگای برای استراحت باشه اون سایه تاریک سایه آتش فشان در نظر بگیرید که گداخته ها بر سر انسانه که انسان عذاب می کشد و, در... و درد می کشد اون دوده های تاریک سایه از دوده های تاریک و ظل من احمو لا باردین ولا کریم اون سایه نخونکه لا بارد سرد نیست ولا کریم و نهم سایهی هست که انسان درش خوش باشه درش استراحت بکنه درش راحت باشه نه حتی سایه جهنمم دردناک و سخته طعام همون غسلین غذای جهنمیان چیه؟ غسلین غسلین چیه؟ فلیس لهم الیوم ها هون حمیم ولا طعام الا من غسلین غذایی نخواهند داشت آبی نخواهند داشت آبشون چیه؟ حمیم آب و آب جوشان و چی؟ و چرکی که همراه خون بیرون میاد اون چرکی که از زخم بیرون میاد با اون گندیدگیش با اون زنندگیش تزا و آب هست که جهنمیان به خوردشون میدن که بنوشن بخورن بیاشامن سخت والله دردناک تصورش سخته و سقوا ماء حمیم فقطع امعائه فسقوا ماء حمیم جهنمیان تشنه میشن طلب آب میکنن بار آب آبی که بهشون داده میشه چه آبیه؟ آب جوشان. آبی غیر از اون دیگه اونجا نیست. اون آب جوشان. فقط طع امعاء تر ازای خوردن اون آب، نوشیدن اون آب دل روده‌شون پاره می‌شه. امانیهم فی هالهلاک ونادو یا مالک ونادو یا مالک یقضى علينا رب ليقضى علينا ربک یا مالک مالکیه خازن و مسئول مسئول کجا؟ جهنم. ای مالک خازن جهنم. از الله بخواه که ما را هلاك کنه که این عذاب را دیگر نبینیم نابود بشیم و نادو یا مالک ليقض علينا ربك قال انكم ماكنون هرگز شما باید اینجا ماندگار بشید روز روز پشیمانی روز حسرت روزی که اون گناهکار یا اون کافر و فاسق و فاجرش تمنا میکنه که کاش من دوباره اون خاک و خاکستر بشم که دیگه زنده نشم و یقول الکافر یا لایت انی کنت تروا اکاش خاک و خاکستر میشدم و باشم و ما لهم خروج راه دیگه برای خروج نیست الله در قرآن میگه و ما هم بخارجین من النار راه گریزی برای جهنمیان از جهنم, جهنم نیست و ما هم بخارجین منها و ما لهم خروج ولا موت و نه مرگی در اون روز ها بود رسول الله صلی الله عليه وسلم میفرمایند در اون روز مرگ را همچون گوسفندی میارن و الله دستور میدهد که اون گوسفند را سرزنند اون مرگ الله هست که در اون روز ندا میزند بعد از اینکه اون مرگ کشته میشود الله ندا میزند که دیگر پس از این مرگی نخواهد بود مرگ مرد حق حقیده ایم آهل سنت و جماعت بر اینه که بهش و جهنم فنانه میشن ماندگارن چون الله خاصه که مندگار باشن مرگ اونجا نابود می شود و دیگر پس از آن مرگی نخواهد بود و این کف لهم نار و جهنم، لا وقوا عليهم لا قوا عليهم نابود نخواهند شد جهنمیان فهیمموتو تا اینکه بمیرن نه مرگی نخواهد بود ولا يخفف عنهم من عذابها ها و فکرم نکنن که عذاب اونجا کم میشه و تاسه میشه کذ که كل کفور هر کسی که این چین بود این چینین سزایش خواهد بود. وهم يصرخون فيها ربنا داد فریاد میزنند ربنا اخرجنا نعمل صالحا پروردگارا ما را برگردون تا عمل نیکی انجام بدیم غیر الذي كنا نعمل غیر از اون عملی که انجام میدادیم اولم نعمركم ما یتذكر فيه من تذکر و جاءکم النذیر عمر بیت ندادیم انزار گری نفر فرستادیم که بهتون بگه فذوقوا فمال الظالمین من نصير بچشید که برای نجات دهنده و نصر دهنده نیست لا فنا لها خالدی نفیها بده چقدر الله در قرآن تکرار میکنه که اون جهنم جاویدان و فنا نمیشه قل هم این قل النفس لیس سیواهما دو جایگاهه این بهش اشت و این جهنم قل النفس لیس سیواهما جای دیگری نیست غیر از این دو جا لتكسب او اوف ما بده لها. لها ما کسبت و علیه ما اكتسبت. لها ما کسبت اون خوبی که به دست به نفعشه نجات دهندهشه اعمالت تو را نجات خواهد داد. لیتکس هر چیزی که کسب کردی اعمال نیکی انجام دادی به دردت خواهد خورد. و اما اگر اعمالت ناشایست و بد بود و علیها اکتسبت در مقابل اون سزای بد و وخیمی خواهید داشت. او فل تکسب ما بده لها فطوبه لنفس جوزت تخففت فطوبه طوبه جایگاهی است در بهشت. طوبه الله گذاشته برای اونهایی که در غربت دین به سر میبرن اونهایی که غریبن در دینشون طوبا جایگاه خاصی هست اونهایی که دینشون ارزش دینشون نزدشون بالاتر از این دنیا طوبا برای اون کسی هست که این دنیا را ناچیز شمر این دنیا را اندک شمر این دنیا را بیشتر از اون ارزشش ارزش بهش نداد فطوبا لنفس جوزد و تخففد فتنجو کفافا لا علیها ولا لها فنجات بیابه. لا به اگر چیزی به گردنش نباشه لاقلش اگر عمل بدی نداره گناهی به گردنش نباشه یا حق کسی به گردنش نباشه حالا با این قصه من این منظومه را خاتمه میدم حدیث ام المؤمنین که قبلا ابتدای بحث گفتم خواهد اومد با این حدیث تا مجلس رو قرار میدیم رسول الله صلی الله علیه و سلام چنانچه عاشر وعد میکنه در سنن و صحیح شخصی عمر نزل رسول اساس نشس فقال یا رسول الله ان لی مملوکین یکذبونن و یخونونن و یعصونن بردهایی دارم دروغ میدن دن خیانت میکنن سرپیچی میکنن از استرا و اشتم و ضربهم منم دشمنشون میدم میزنمشون فکیف انا منهم چه جایگاهی دارم من در مقابل اینا جای من چیه بهشتی هم جهنمیه در مقابل این عملی که انجام دادم اینا رو کتک زدم در مقابل کتک ای رو کتک زدم خودیش دارن محاسبه میکنن صحابی فقال النبي صلی الله علیه و سلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك اونها محاصی میشن در مقابل دروغ، اسیان سرپیچیشون دروغشون حساب کتاب میشن و تو هم در مقابل عقوبتت حساب کتاب میشه و عقاب ایاهم و تو هم میشین حساب کتاب میشه فاین کان عقابک ایاهم بقدر ذنوبهم کان کفاف اگر عقوبتت به اندازه گناه اونا بوده اونها دروغ بهت گفتن خیانت بهت کردن اگر تو تک زدی به اندازه اون گناهشون کان کفاف سر به سر شد کفاف سر به سر لا لك ولا عليك نه تو چیزی به دست آوردی نه اونها چیزی به دست آوردن نه بر علیه تو چیزی است یعنی از حقونه و نه هم تو چیزی به دست آوردی و انکان عقابک ایاهم دون دروبهم کان فضلا لك یعنی اگر عقوبته کمتر بوده تو فضلی بگردن گردن داری کمتر از عقوبتشون کردی همچنان تو حق به گردن اونها داری دروغ بهت گفتن خیانت کردن در میزان حسنات تو از اعمال اونها برداشته میشه و انکان عقابک ایاهم فوق گنوبهم اگر عقوبت تو بیشتر از اون گناه اونها باشه عقت الصلهم منك الفضل در مقابل فضلی که به گردن اون حقی که به گردن تو دارن قصاص می‌شی وطن رجل فجاء لبکی و يهتف صحابی یک گوشی بکنال گرفت شنو کرد دیگری کرد یک گوشه بگاری کرد به گریه کرد و قال رسول الله اما تقراو كتاب الله مگر قرآن قران نمیخونی و نضع الموازین القسط که ما ترازوهای حق حد قسط را در روز قیامت قائیم گذاشت ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا هيكس الظلم وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها التجار يكزر باش ما يومون ذره را خيم ورد وكفى بنا حاسبي كافيك الله حسبك كتابي يكون بالظلم الله بكسي ما يكون وربك بظلام للعبيد هذا حق شي هيكسي ظلميكون فقال الرجل وصحابي يقول والله يا رسول الله ما اجد لي ولا لهم شي اخر من مفارقتهم اشهدو که انهم احرارون کلو هیکاش ما هم داشتم ایچیزی بدیم که مارا نجات بده از جهنم میگه یا رسول الله برای نجاتم همه بردگانم را آزاد کردم که الله مرا عذاب نده که میتونه تحمل عذاب الهی رو داشته باشه اون عذاب دردناکش سختش که انسان در مقابل تک تک زره اعمالش حساب و کتاب بشه صلی اللہ علی محمد علی محمد